ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز فصل 13 هم بخش سوم انگل ها هم لازم نیست که درون میزبانشان زندگی کنند ژن آنها می تواند اثر خود را از فاصله دور بر میزبان آشکار کند جوجه فاخته درون سینه سرخا یا سسکا زندگی نمی کنند خون آنها را نمی مکند یا بافتشان را در کام خود فرو نمیبرند. ولی ما در اینکه آنها را انگل حساب کنیم تردید نداریم سازگاری فاخته برای دستکاری در رفتار پدر و مادر اش را میتوان عمل رخ نمونی گسترشی از راه دور ژنهای فاخته دانست می میشود با پدر و مادر ای که گول خورده اند و از تخمهای فاخته نگهداری میکنند هم دردی کرد افرادی هم که تخمها را جمع می میکنند گول شباهت تخم فاخته به مثلا، تخم پیپت چمنزار یا تخم سسک را خوردهاند. یعنی نجات مختلف فاخته ماده هر کدام انگل گونه متفاوت از میزبان شده اند. چیزی که فهمش مشکل تر از رفتار پدرخانده و مادرخانده در آخر فصل نسبت به جوجه فاخته است که تقریبا تازه پر آوردند. آن ساخته معمولا خیلی دروشتر و در بعضی موارد به طور چشمگیری دروشتر از والدینش است. حالا من دارم به تصویر یک سه جنگلی بالغ نگاه می کنم. در مقایسه با فرزندخوانده قول پیکر خود چلان کوچک است که باید بپرد روی پشتش تا به او غذا بدهد. اینجا دیگر کمتر دلمان برای آن میزبان می سوزد از حماقش تعجب می کنیم از بیاغلیش هر موجود کودنی وقتی میبیند بچهاش اینقدر بزرگ است باید بفهمد یک جایی کار ایراد دارد من فکر میکنم کار بچه فاختهها فقط گول زدن میزبان نیست فقط این نیست که به چیزی تظاهر کنند که نیستند به نظر میرسد روی دستگاه عصبی میزبان اثر میگذارند که مثلا اثر یک داروی مخدر است در که این قضیه حتی برای آنها که تجربه ای از مصرف مواد اعتیادآور ندارند مشکل نیست. ممکن است عکس چاپ شده بدن یک زن مردی را تالالت نعوظ تحریک کند. آن مرد این گول را نخورده که فکر کند تصویر چاپ شده واقعا خود زن است. او میداند که دارد به نقش جوهر روی کاغذ نگاه میکند. اما واکنش دستگاه عصبی او به آن مثل واکنش نسبت به یک زن واقعی است. شاید جاذبه یک فرد خاص از جنس مخالف برای ما غیرقابل مقاومت باشد. حتی اگر قضاوت بالاتر خود برتر ما به ما بگوید که رابطه با آن شخص در درازمدت به نفع هیچ کدام نیست. همین قضیه در مورد جاذبه غیرقابل مقاومت قضاهای غیربهداشتی نیز صادق است. آن سعوه جنگلی احتمالا توجه ای نسبت به منافع دراز مدت خود ندارد. بنابراین راحت تر می توان درک کرد که دستگاه عصبی او در مقابل بعضی از محرکهای خاص تا مقاومت ندارد. دهن سرخ و باز جوجه فاخته آنقدر اقوا کننده است که پرندشان آسان زیاد دیدن پرنده دردان بچه فاختهی غذا گذاشته، که در لانه پرنده دیگری جا خوش کرده است شاید آن پرنده به سوی لانهش در پرواز بوده و برای بچه خودش غذا می برده است که ناگهان از گوشه چشمش دهن فوقلاده گشاد و سرخ یک فاخته کوچک را در لانه پرنده از گونهی کاملا متفاوت دیده است راهش را به طرف لانه آن قریبه کج کرده و آن غذا را که قرار بود به بچه خودش بدهد در دهان یک بچه فاخته گذاشته است نظریه غیرقابل مقاومت بودن با دیدگاه اولین شناسان آلمانی هماهنگ است که رفتار هایی را که جوجه‌های دیگر را بزرگ می‌کردند، اعتیاد و جوجه فاخته ها را عامل فساد قلمداد می‌کردند. نابجا نیست یادآور شویم که این نوع ادبیات برای آزمایشگرهای امروزی چندان خوشایند نیست، اما بدون تردید اگر بنا را بر این بگذاریم که دهن باز فاخته یک انگیزه فوق و دارومانند است برایمان توضیح اینکه قضیه از چه قرار است بسیار راحتتر می شود. همدردی با رفتار آن پدر یا مادر کوچکی که روی گردن بچه غولاصایش می ایستد راحتتر می شود. او عقلش را از دست نداده است. گول خورده هم واجه به نیست. دستگاه عصبی او تحت کنترل است، همانقدر بی اختیار است، که یک معتاد به دارو چنین است یا آن فاخته مثل دانشمندی است که الکترودهایی را به مغز آن پرنده فرو کرده باشد اما حالا درک بیشتری از پدر یا مادر خوانده‌ای داریم که رفتارشان تحت تاثیر است باز میپرسیم چرا انتخاب طبیعی میگذارد؟ فاخته قصر در برود چرا دستگاه عصبی میزبان برای مقاومت در مقابل دهان سرخ و بازی که اعتیاد آور است تکامل نیافته است شاید انتخاب هنوز فرصت انجام این کار را نداشته شاید فاخته فقط در قرن‌های اخیر توفیدی میزبان‌های فعلیند، و در قرن‌های آینده آنها را رها می‌کنند و گونه‌های دیگری را قربانی خود می‌کنند دلایلی برای تعیید این نظریه وجود دارد اما من احساس میکنم باید چیزی بیش از آن نقش داشته باشد. در رقابت تسلیحاتی تکاملی بین فاخته و هر گونه میزبان نوعی بیعدالتی درونسرشتی وجود دارد که ناشی از نابرابر بودن هزینه شکست است. هر جوجه فاخته بازمانده یه در نسل فاخته است که هر کدام آنها در ایجاد تغییر در رفتار پدر یا مادرخانده ای موفق بودهاند. هر جوجه که این تسلط بر میزبان را حتی به طور موقت از دست داده، زندگیش به پایان رسیده است. اما هر پدر یا مادر خوانده‌ی بازمانده‌ی در نسل اجدادی است که شاید هرگز در عمرشان به فاخته‌ای بر نخوردهاند و آنهایی که در لانه خود فاخته‌ای داشته و تسلیم و شده اند، باز به زندگی خود ادامه داده و فست بعد کرده اند. نکته در عدم تقارن هزینه‌ای است که هر یک برای شکست می‌پردازند. ژن شکست در برابر باجرهی به فاخته به در سین سرخ یا صاوه جنگلی به نسل بعد منتقل می‌شود. ژن شکست در باجگیری از پدرخانه یا مادرخانه نمی‌تواند در فاخته به نسل دیگر انتقال یابد. منظور من از درون سرشتی؟ بنابرابری در هزینه شکست همین است. لب مطلب در یکی از داستان‌های عذب آمده است خرگوش تونتر از روباه می‌دود چون خرگوش برای جانش می‌دود و روباه فقط برای شام آن شبش. من و همکارم جان کربس نام این را گذاشته این اصل جان شام. بنابر اصل جان شام ممکن است گاهی حیوانات طوری رفتار کنند و تحت کنترل حیوان دیگری باشند که اصلا به سودشان نباشد در واقع به یک معنا در جهت بیشترین منفعت خود عمل می کنند. نکته مهم در اصل جانشام این است که آنها می توانند در برابر این دخالت مقاومت کنند ولی این کار برایشان خیلی گران تمام میشود. شاید برای اینکه در مقابل وسوسه فاخته مقاومت کنند باید چشمهای بزرگتر یا مغز بزرگتری داشته باشند که آن هم هزینه فوق‌العاده‌ای دارد. رقیبانی که در آنها گرایش به مقاومت در مقابل این دستکاری وجود دارد، عملا در انتقال جننهایشان به نسل بعد ناموفق ترند. دلیلش هزینه بسیار زیاد مقاومت است. اما یک باری دیگر ما برگشتیم با آنجا که نگاهمان به زندگی از دیدگاه یک موجود زنده باشد نه از دیدگاه ژنهایش وقتی از کرمه تخت و هلزان صحبت میکردیم چنین پنداشتیم که جن انگل میتواند بر بدن میزبان اثر رخنمونی داشته باشد درست به با همان صورتی که هر جاندار روی بدن خود اثر رخنمونی دارد ما نشان دادیم که مطرح کردن تصور بدن خود یک فرض اضافی است به مفهومی همه ی درون یک بدن جنهای انگلی هن. ما چه بخواهیم آنها را جن خود بدن بدانیم چه غیر آن فاخته به عنوان نمونه از انگلی که درون بدن میزبانش زندگی نمی کند وارد بحث ما شد او بیشتر به همون شیده انگل انگلهای درون میزبان میزبانش را دستکاری می کند و این اثر دستکاری همانطور که اکنون دیدیم می تواند مثل هر ماده مخدر یا هرمون شدید و غیر قابل مقاومت باشد مثل مورد های درونی حال ما باید تمام مطلب را دوباره از نظر ژن و رخنمون گسترش یافته به صورت دیگری بیان کنیم در تکامل رقابت بین فاخته و میزبان پیشروی هر طرف صورت جهش ژنی به خود می گیرد و مورد انایت انتخاب طبیعی واقع می‌شود. هرانچه در مورد دهن گشاد فاخته که مثل داروی مخدر روی دستگاه عصبی میزبان عمل میکند گفته شد، باید در اصل یک جهش ژنی به حساب آید. این جهش از طریق اثری که مثلا روی رنگ به شکل دهن جوجه فاخته داشته کارگر بوده است. اما هنوز این آنی ترین اثر آن نبوده آنیترین اثر را روی اتفاقات شیمیایی غیر قابل رؤیت درون سلول گذاشته است تأثیر ژن روی رنگ و شکل دهن باز او خود یک تأثیر غیر مستقیم است و نکته در همین جاست و فقط کمی غیر مستقیم تر از اثری است که فاخته روی رفتار میزبان گیج و مست خود دارد دقیقا به همون مفهومی که ما از اثر رخنمونی ژن فاخته و رنگ و شکل دهان باز فاخته صحبت میکنیم میتوانیم از اثر رخنمونی گسترش آفتهی ژن فاخته و رفتار میزبانش صحبت کنیم. های انگلی می میتوانند بدن میزبان را تحت تأثیر قرار دهند. نه فقط وقتی که انگل درون بدن میزبان زندگی و با ایجاد تغییرات شیمیایی مستقیما آن را دستکاری می کند بلکه وقتی که کاملا جدا از میزبان است و از دور دستکاریش می کند. در واقع همانطور که کمی بعد می بینیم حتی تأثیرات شیمیایی ممکن است از خارج از بدن هم عمل کنند. فاخته موجود است و می شود از آن چیزهای زیاد آموخت. اما تقریبا همه شگفتی های دارند. در مقابل حشره ها ناقابل است. حشره ها این امتیاز را دارند که بسیار فراوانند. همکارم رابرت می اظهار داشته است که با یک تقریب مناسب همه گونه ها حشرند. هشره های توفلی را نمی توان شمارش کرد. آنها بسیار زیادند و عادتشان اغلب بارها از نو ابداع شده است. بعضی از نمونه هایی که به آن توجه خواهیم کرد چنان فراتر از روش معمول فاخته است که به عجیب ترین تصورات ممکن از رخنمون گسترش یافته تحقق بخشیده است یک فاخته تخمش را میگذرد و ناپدید می شود بعضی مورچه های ماده به شکل تماشایی تری حضور خود را نشان می دهند من اغلب اسم های لاتین را نمی آبرم. اما باتریومیرمکس ریجسیدیوس ها باتریومیرمکس د ها داستانی دارند این هر دگونه گونه های دیگر هند. البته در همه مورچه ها بچار ها کارگرها قضا می دهند نه والدین بنابراین کارگرانند که هر انگل بعد از اینی باید گولشان بزند یا دستکاریشان کند یک قدم مفید اولیه این است که از شر مادر خود آن کارگرها با میری که او به تولید فرزندان رقیب دارد خلاص شوند در این گونه ی انگل ملکه خودش به تنهایی دزدکی وارد لانه یک گونه دیگر از مورچه ها می شود. دنبال میزبان می گردد و تقریبا رویش سوار می شود و بی سر آن کاری را می کند که به گفته زیرکانه و تنز ادوارد ویلسون تنها کاری است که در آن تخصص یافته، آاس آاس سر قربانیش را از تن جدا می کند. آن وقت این قاتل ماده را کارگران بیمادر شده پرورش میدهند. و با علاقه تخم و لاروهای او را مراقبت میکنند. بعضی از تخم خودشان تبدیل به کارگر میشوند و به تدریج جایگزین آن گونه اصلی لانه میشوند. بعضی دیگر ملکه میشوند و به بیرون پرواز میکنند تا دنبال های جدید و سرهای ملوکانه دیگر میگردند که هنوز کسی جدایشان نکرده است. اما عره کردن سر فقط بخش کوچکی از تکلیف شاق آنهاست ها است. انگل ها اگر بتوانند دستیابی بگیرند، خودشان را به زحمت نمیاندازند. شخصیت مورد علاقه من در کتاب جامعه هشرات نوشته ویلسون «مونوموریوم استانسخیل است. این گونه زمانهای تکاملی در مجموع طبقه کارگرش را از دست داده است. کارگران میزبان به خاطر توفییدی هایشان هر کاری می کنند. حتی سختترین کارهای ممکن را به فرمان ملکه ی انگلی مهاجم در واقع دست به قتل مادر خود میزنند لازم نیست آن قاصب از آرواره استفاده کند او با کنترل ذهنها ها کار خود را پیش میبرد چگونه این کار را انجام می معلوم نیست؟ احتمالا با استفاده از یک ماده شیمیایی زیرا دستگاه عصبی مورچ ها معمولا خیلی تحت تاثیر مواد شیمیایی قرار می گیرد. اگر واقعا سلاح اوشیمیایی باشد پس مثل هر داروی دیگر شناخته شده در علم بی سر و صدا عمل می کند. این ماده ذهن مورچه کارگر را به تلاتو می اندازد. اختیار ماهیچه آنها را به دست می گیرد. توجه آنها را از وضعی که عمیقاً در سرشت آنهاست منحرف می کند و آنها را با علیه مادر خود اقدام کنند. برای مرچه ها مادر یک دیوانگی خاص ژنی است و در واقع دارویی که آنها را به این عمل وامی دارد باید قوی باشد. در دنیای یا رخ یافته نباید پرسید چگونه رفتار حیوان به سود است. باید پرسید به جای ژن چه کسی دارد سود می برد. چایی بسی تعجب است که مرچه مورد مرد برگشی انگل ها واقع شوند و این انگل ها نه فقط مرچه های دیگر بلکه مجموعه ی از کارکشتگان دیگری هستند. مرچه های کارگر جریان غنی مواد قضایی را از یک سرچشمه پر برکت به داخل یک انبار مرکزی که قرارگاه مفتخور است هدایت می کنند. ها محافظان خوبی هستند. کاملا مسلحند و تعدادشان زیاد است. شتای فصل دهم ده را می شود اینطور در نظر گرفت که شیره گیاه میدهند و محافظ حرفه به استخدام می گیرند. چند گونه پروانه مرحله کرم بودن خود را درون لانه مورچه ها میگذرانند، بعضی مستقیاً چپاولگرند، بعضی دیگر به ازای مراقبتی که مورچه از آنها می کنند چیزی میپردازند. آن پروانه اغلب، به وسایلی برای کنترل کردن محافظانشان مجهزند. کرم حشره یک پروانه که تیس به ایران آ نامیده می شود، یک عضو تولید صورت در سرش دارد که مچ ها را فرا میخواند و یک جفت لوله مانند تلسکوپی در قسمت عقب دارد که عثار ای اقوا کننده از آن بیرون می ریزد. روی شانههایش، یک جفت شاخک دیگر قرار دارد که با جادوی زیرکانه تر دیگری را افسون می کند ترشوه آنها قضا نیست بلکه معجون فرار دیگری است که اثری تماشایی روی رفتار مورچه ها دارد مرچهی که تحت تاثیر آن قرار گیرد در هوا می پرد با آرواره های باز و حالت تهاجمی خیلی بیش از وقت عادی آماده حمله است. و هر جنبنده‌ای حمله میکند و آن را گاز می گیرد. البته غیر از کرم حشری که باید حمل کند. و اینجای که تعجب است. علاوه مورچه‌ای که تحت افسون ماده مخدر کرم حشره است، سرانجام وارد وضعیتی به نام اتصال میشود. وضعیتی که در آن چندین روز نمیتواند از حشره جدا شود. آنگاه کرم حشره مثل شته مورچه را به محافظت خود میگمارد اما یک کار بهتر میکند در حالی که شته روی تهاجم عادی مورچه در مقابل کارگران حساب میکرد آن کرم حشره دارای تهاجم زایی تجویض میکند که به نظر می رسد بیسر و صدا آنها را به هم میچسباند من نمونه های عجیب را انتخاب کردم اما در حالت عادی تر طبیعت پر است از حیوانات و گیاهانی که در زندگی افراد گونه‌های خود یا گونه‌های دیگر دخالت می کنند. در همه موارد که انتخاب طبیعی ژن دستکاری را دا ترجیح داده است عادتا میتوانیم از آن ژن به عنوان ژن که اثر رخ نمونه گسترش یافته ای بر بدن جانداران دستکاری شده دارند صحبت کنیم. مهم نیست که یک جن از نظر فیزیکی در بدن كدام موجود قرار داشته باشد هدف تأثیری که میگذارد ممکن است همان بدن یا بدن دیگری باشد انتخاب طبیعی ژنهایی را ترجیح می دهد که برای انتشار خود جهان را دستکاری می کنند و این همان چیزی است که من آن را قضیه اصلی رخنمون گسترش یافته خواندهام رفتار هر جاندار گرایش دارد به اینکه بقای جنهای آن رفتار را بیشتر کند. چه آن جنها در بدن جاندار به خصوصی باشند که آن رفتار از او سرزده است، چه غیر از این باشد. اینجا من در مورد رفتار حیوان نوشتم، ولی این قضیه در مورد رنگ، اندازه، شکل و هر چیز دیگر میتواند صادق باشد. سرانجام وقت آن است که برگردیم به مسئلهای که با آن شروع کردیم به کشمکش بین خود موجود زنده و ژنهای آن به عنوان های رقیب که باید نقش اصلی را در انتخاب طبیعی داشته باشند در فرظهای قبلی من فرض را بر این گذاشتم که مشکلی وجود ندارد زیرا تولید فرد معادل بود با بقای ژن در آنجا فرض کردم شما میتوانید بگویید جاندار برای انتشار همه ژنهایش تلاش میکند یا جنها برای توالی یک موجود زنده میکوشند تا منتشرشان کند. به نظر میرسد اینها به دو زبان یک چیز را بیان کردند و بسته به سلیقه شماست که کدام را بپسندید. اما به نحوی هنوز اشکال باقی است. یک راه برای روشن کردن موضوع استفاده از اصطلاح همتاساز و محمل است. واحد بنیادی در انتخاب طبیعی آن چیز اصلی که ممکن است بتواند یا نتواند زنده بماند آن چیزی که دودمانی از نسخه یکسان یا هر از گاهی یک جهش اتباقی است همتاساز نامیده می شود ملکونهای دینه ای همتاسازند آنها معمولا به دلایلی که به آن خواهیم رسید دار و دسته می شوند و در یک ماشین بقای مشترک قرار می گیرند که به آن محمل می گوییم محمل هایی که ما خوب میشناسیم بدنها هستند مثل بدن خود ما بنابراین بدن یک همتاساز نیست یک محمل است باید برای این قضیه تأکید کنم زیرا این موضوع مورد سوء تفاهم واقع شده است ها خود را تکثیر نمیکنند آنها می‌کوشند تا همتاسازهای خود را منتشر کنند همتاسازها دریافتی از جهان ندارند تعمه شکار نمی کنند. یا از مقابل شکارگران نمی گریزند آنها محملی می سازند که امکان همه این کارها را برایشان پراهم می آورد به دلایل بسیار برای زیستشناسان راحتر این است که توجه خود را در سطح محمل متمرکز کنند برای اهداف دیگر راحتر این است که تمرکز روی همتاساز باشد جن و موجود جاندار برای داشتن نقش اول در صحنه نمایش داروینی رقیب هم نیستند. آنها بازیگران متفاوت و مکمل یکدیگرند و نقششان از بسیاری جهات به یک اندازه اهمیت دارد. نقش همتاساز و نقش محمل استفاده از اصطلاح همتاساز محمل به های مختلف به ما کمک می کند مثلا در مورد اختلاف نظر آزارنده ای که در مورد سطح عملکرد انتخاب طبیعی بین انتخاب ژن مطرح شده در فصل سوم و انتخاب گروه مورد انتقاد ما در فصل هفتم وجود دارد. انتخاب فرد کم و بیش یک انتخاب میانه بین دو حالت افراطی است و بسیاری از زیستشناسان و فیلسوفان به گام زدن در این راه آسان تمایل دارند و به این راه افتاده‌اند. اما حالا ما می‌بینیم که قضیه غیر از این است. حالا می‌بینیم در این داستان برای داشتن نقش محمل، موجود زنده و گروه موجودات زنده رقیبان واقعی یکدیگرند، ولی هیچ کدامشان کاندیدای نقش همتاساز نیستند و این جدل بین انتخاب فرد و انتخاب گروه در واقع جدل بین های رقیب هم است. جدل بین انتخاب فرد و انتخاب اصلا جدل نیست. زیرا ژن و موجود زنده هر هرکدام کاندیدای نقش های متفاوت و مکمل هم در این داستانند همتاساز هم و محمل کشمکش بین موجود زنده و گروه موجودات زنده بر سر نقش محمل را که یک رقابت واقعی است میتوان فرو نشاند از نظر من پیروزی قطعی با موجود زنده است گروه هویت برهمی دارد یک گل آهو و یک گل شیر یا گرگ تا حدی وحدت هدف و انسجام دارند اما در مقایسه با انسجام و یگانگی هدفی که اجزای بدن شیر، گرگ یا آهو دارند ناقابل است صحت این نظر را حالا کاملا پذیرفتند اما چرا چنین است؟ فرنوتیپ گسترش یافته و انگل باز می توانند به داد ما برسند ما دیدیم ژنهای یک انگل با یکدیگر همکاری میکنند ولی علیه ژنهای میزبان هستند که با همدیگر همکاری دارند علت این است که این دو مجموعه متفاوت ژن از راهای متفاوتی آن محمل مشترک یعنی بدن میزبان را ترک میکنند ژن هلزون محمل مشترک را از طریق اسپرم و تخمک هلزون ترک میکند چون همه ژنهای هلزون سهم برابری در هر اسپرم و در هر تخمک دارند زیرا همه در یک میوز بختآزمایی بیطرفانه شرکت دارند همه با هم برای خیر همگانی کار می کنند. بنابراین از بدن هلزون یک محمل هدفدار و منسجم ساختهاند دلیل اصلی اینکه چرا یک کرمه آشکارا آشکار از میزبانش جدا است دلیل اینکه چرا اهداف و هویتش را با اهداف و هویت میزبان در هم نمی آمیزد این است که ژنهای کرمه تخت به روشی متفاوت از روش ژنهای حلزون آن بدن مشترک را ترک می کنند و در آن بخت آزمایی میوزی حلزون شرکت ندارند قره کشی خاص خود را دارند بنابراین تا این حد و فقط این حد دو محمل یعنی حلزان و کرمه تخت مستقل درون آن از هم جدا باقی میمانند. اگر جن آن کرمه تخت همراه با تخمک و اسفرم حلزان انتقال پیدا میکرد، آن دو وجود به صورت یک بدن تکامل می یافتند. شاید حتی ما نمی این بگوییم در اصل دو محمل بودند. هر تک موجود زندهی مثل ما تجلی نهایت این ادغام شدن هاست. گروه موجودات فوج پرنده ها دستی گرگ ها در هم ادغام نمیشون که محمل بسازند. دقیقا به این دلیل که ژنها در آن فوج دسته با روش یکسانی فعلی یعنی بدن را ترک نمی کنند. بیشک، یک دسته ممکن است شاههایی داشته باشند اما همه ژن هایی که در دسته اصلی هستند از یک مسیر با یک تقسیم عادلانه به آن شاه کوچکتر منتقل نمیشوند. برای تمام ژنهایی که در یک دست گرگ هستند احتمالا سود بردنشان از رویدادهای آینده یکسان نیست ممکن است یک ژن با ترجیح دادن گرگ خود به بهای زندگی گرگ های دیگر رفاه آینده خود را فراهم کند بنابراین هر گرگ محملی است شایسته این نام یک دست گرگ چنین نیست از نظر ژنتیکی بگوییم دلیلش این است که در بدن هر گرگ همه سلول ها به جز سلول های جنسی جنهای یکسانی دارند در حالی که همه جنهای سلول جنسی به احتمال برابر در هر یک از آنها خواهد بود اما سلولهایی که در یک دست گرگ هستند جنهای یکسانی ندارند و این امکان را هم ندارند که در سلول زیر شاخهی که از آن جدا می شود حضور داشته باشند آنها همه چیز را با جنگیدن در مقابل رقیبانی که در بدن گرگ های دیگران به چنگ میآورند. گرچه این واقعیت که اعضای یک دست گرگ احتمالا خیشاوندند، از شدت این می خواهد.